بخش دوم یک نابهنجاری در بین جماعتی که قالب اوقات زاهدمنش و متنفر از لذت بودند فیلسوفی وجود داشت که به نظر می رسید را درک می کند و می خواهد کمک کند او چونین نوشت اگر من لذتهای چشایی و لذتهای عشق و لذتهای بینایی و شنوایی را کنار بگذارم دیگر نمی دانم خوبی را چگونه تصور اپیکور در 341 قبل از میلاد در جزیره سرسبز ساموس چند مایل دورتر از ساحل آسیای صغیر غربی متولد شد. خیلی زود به فلسفه روی آورد. از 14 سالگی مسافرت کرد تا به درس‌های پانفیلوس افلاتونگرا و نازیفانس، فیلسوف قائل به نظریه اتمی گوش فراداهد. ولی دریافت که نمیتواند با بخش عمده‌ای از این درسها موافقت کند. و در اواخر دهه سوم عمرش تصمیم گرفت افکار خود را درباره فلسفه زندگی تدوین کند. میگویند 300 کتاب تقریبا درباره همه چیز نوشت. از جمله درباره عشق، درباره موسیقی، درباره رفتار عادلانه درباره زندگی بشری در چهار جلد و درباره طبیعت در سی و هفت جلد. گرچه مجموعه از حوادث ناگوار فاجع آمیز تقریبا همه این کتاب را در طی قرون از میان برد و فرصفه اپیکور بر اساس معدود بخش های از آثارش و گواهی اپیکوری های متأخر بازسازی شد. آنچه بیدرنگ فرصفه او را متمایز ساخت تأکید بر اهمیت لذت جسمانی بود. لذت آغاز و قایت زندگی سعادتمندانه است. این چیزی بود که اپیکور بر آن تأکید می کرد. او چیزی را تأیید می کرد که بسیاری مدتها به آن عقیده داشتند، ولی فلسفه به ندرت آن را پذیرفته بود. اپیکور به عشق خود به غذای خوب اعتراف کرد. سرآغاز و سرچشمه همه خوبی ها لذت شکم است. حتی حکمت و فرهنگ را باید راجع به آن دانست. فلسفه درست چیزی نبود غیر از راهنمای لذت. کسی که ادعا می کند هنوز برای فلسفه آماده نیست یا دیگر سنش آن را اختزا نمی کند شبیه فردی است که بگوید بسیار جوانتر یا پیرتر از آن است که سعادتمند باشد. معدودی از فیلسوفان تا آن زمان با چنین سراحتی به علاقه خود به سبک زندگی لذت بخش اقرار کرده بودند. این کار ادعا زیادی را شگفت زده کرد. به ویژه وقتی شنیدند که اپیکور ابتدا در لامسکوس واقع در داردانل و بعد در آتن حمایت برخی از ثروتمندان را جلب کرده و از پول آنها برای تأسیس بنیادی فلسفی به منظور ترویج خوشبختی استفاده کرده است. این مدرسه هم زنان و هم مردان را میپذیرفت و آنها را تشویق میکرد که هم درباره لذت مطالعه و هم مطابق آن زندگی کنند. فکر اینکه در داخل مدرسه چه میگذشت در آن واحد هم آمیز بود و هم از نظر اخلاقی نکوهیده. اغلب اخباری درباره کارهای ناخوشایند اپیکور در فاصله میان درس ها به بیرون درز میکرد. تیموکراتس، برادر دستیار اپیکور، مترو دروس، این شایعه را رواج داد که اپیکور مجبور است روزی دوبار به دلیل پرخوری استفراغ کند. و دیوتیموس رواغی این عمل ظالمانه را انجام داد که پنجاه نامه مستحجن منتشر کرد و گفت که این نامه ها را اپیکور در حال مستی و انانگسیختگی جنسی است. به رغم این انتقادات، تعالیم اپیکور همچنان طرفدارانی پیدا می کرد. این تعالیم در سراسر حوضه مدیترانه پخش شد. مدارس لذت در سوریه، یهودیه، مصر، ایتالیا و گل یا فرانسه امروز تأسیس شد. و این فلسفه پانصد سال نافذ ماند و فقط به تدریج بر اثر مخاسمه بربرهای خشن و مسیحیان در دوران سقوط امپراتوری روم غربی از میان رفت. حتی از آن پس نام اپیکور به شکل صفت به عنوان نشانه ای از علایق او به بسیاری از زبانها داخل شد. در لغتنامه انگلیسی آکسفورد، اپیکوری به معنای دلبسته لذتجویی. جویی، بنابراین خوشگذران، لذت طلب و شکم باره معنی می دهد. هنگام جستجو در یک روزنامه فروشی در لندن، 2340 سال پس از تولد اپیکور، با نسخه های از مجله زندگی اپیکوری روبرو شدم. فصلنامه‌ای با مقالاتی درباره هتل‌ها، های تفریحی و رستوران‌ها که بر روی کاغذی به درخشش سیب یافته چاپ می‌شوند. این فصلنامه مفاد علایق اپیکور را مطرح می‌کند. از جمله رستورانی در شهری کوچک واقع در شایر که به مشتریان خود که در سالن غذاخوری آرامی روی سندلی هایی با پشتی بلند نشستهاند شامهایی مثل صدف خوراکی تفت داده شده و پروی ایتالیایی همراه با ریس ارزه.